Thank mm. you. هم. از پاریس چه بگویم این ماجرا البته همه در هزیان و دیوانگی گذشت من روی هم رفته سه هفته و اندی در پاریس ماندم و تمامی صد هزار فرانک هم در این مدت دود شد گفتم صد هزار فرانک صد هزار فرانک باقی را به مادمازل بلانش دادم پنجاه هزار فرانک را در فرانکفورت نقد به او دادم و پنجاه هزار فرانک هم سه روز بعد در پاریس به صورت سفته سفته را هم ظرف یک هفته نقد کرد. گفت و هزار فرانکی را که برای من مانده با هم میخوریم آقا معلم. او همیشه مرا آقا معلم میخواند. مشکل میتوان حسابگرتر و لئیمتر از امثال مادباز بلانش تصور کرد. البته جایی که پول خودشان مطرح باشد حالا که در مورد صد هزار فرانک من روک راز گفت که این پول را برای اولین خانه و زندگی خودش در پاریس می خواهد. و افزود حالا من برای خودم سر و سامانی گرفته و زار و زندگی آبرومندی درست کردم و حالا حالا هیچ کس نیست که بتواند مرا از خری سوارم پایین بکشد <تصفيق> دستکم ترتیبی دادم که نتواند البته می گفت که من رنگ این صد هزار فرانکی را که برایم مانده بود ندیدم پول هر چه بود همیشه دست او بود در کیف من که او هر روز بازرسیش میکرد هرگز بیش از صد فرانک پیدا نمیشد و اغلب موجودی هم به صد فرانک هم نمی رسید گاهی با سادگی بسیار میگفت و پول می خواهی چه کنی و من در بند جر و بحث با او نبودم اما با این پول آپارتمان خود را بسیار با سلیقه می و عاقبت وقتی مرا برای خانه مبارکی برد همه اتاق ها را نشانم داد و گفت ببین؟ با صرف جویی و سلیقه آدم میتواند با دست خالی خانه و زندگی آبرومندانه برای خودش درست کند. البته این دست خالی که می گفتفت هزار فرانک تمام شده بود. با 5 هزار فرانک دوم هم یک کالسکه خرید و دو اسب. علاوه بر این دو مهمانی مفصل هم دادیم یعنی دو زیافت رقص که در آن هم اورتانس بود و هم لیزت و هم کلاپاتر اینها زنهایی بودند از بسیاری جهات فوق‌داده و بسیار زیبا در این دو زیافت من مجبور بودم که نقش احمقانه و بی‌مسمای صاحبخانه را بازی کنم یعنی از مهمانها پذیرایی کنم و با زنهای کسبه نوکیسه و از بی سوادی و توهی مغزی و بی شرمی غیر قابل تحمل و با سطوانک های کم سواد و بی ادب و قلم فرسایانی بی و کم مایه و روزنامه داران بی سواد فرومایهی که فراک های شیک و مد روز می پوشیدند و دستگش های کاهی رنگ چونین و چنان به دست داشتند و به قدری خود فروش و پر افاده بودند که از نظایر پترزبورگیشان دست می بردند و این خود کم نیست گرم بگیرم و با بگو بخند سرشان را گرم کنم و نگذارم که احساس کسالت کنند تازه این آقایان کار را به جایی رسانده بودند که به ریش من میخندیدند اما من به قدری شامپانی میخوردم که عاقبت مست میشدم و در اتاق مجاور میخوابیدم اینها همه البته برای من سخت ناگوار بود بلانش در معرفی من به مهمانانش میگفت این یک معلمک است. دیویست هزار فرانگ برده و اگر من نبودم نمیدانست چطور خرجش کند. پولها رو که خرج کردم باید باز برود آقا معلم بشود. کسی جایی سراغ ندارد که معلم سرخانه بخواهند. باید کاری برایش کرد. من اغلب به شامپانی پناه می بردم. زیرا بار اندوه بر دلم اغلب بسیار سنگین بود و زندگیم همه ملالت بود. در محیط پولدارهای بسیار بازاری منش به سر می بردم محیطی که حساب هر دینار را نگه می‌داشتند و همه چیز به معیار پول سنجیده می‌شد. طی دو هفته اول، بلانش از من بسیار بیزار بود. من به این معنی پی برده بودم. درست است که در آراستن سر و وضعم سدیقه نشان می‌داد و هر روز کرواتم هم را به دست خود گره میزد، اما از ته دل مرا خار می داشت ولی من کوچکترین اهمیتی به این حال نمیدادم سخت ملول و دلتنگ بودم و اغلب به قصر گل میرفتم. هر شب باده فراوان می نوشیدم و رقص کانکان می آموختم که در آنجا بسیار زشت می رخزیدند. و من به تدریج در این زمینه مهارت بسیار پیدا کردم و شهرتی به هم زدم عاقبت بلانش به اخلاق من پی برد اول خیال کرده بود که در تمام طول مدت همزیستیمان پیوسته با مداد و کاغذ دنبال او خواهم رفت و همه کارش را به دقت زیر نظر خواهم داشت تا ببینم چقدر خرج میکند و چقدر می‌دوزد و در آینده چه مقدار خرج خواهد کرد و چه مقدار به جیب خواهد زد و یقین داشت که بر سر هر ده فرانک جنگ و دعوا خواهیم داشت و برای مقابله با هر یک از حمله‌های فرضی من از پیش جوابی آماده کرده بود اما چون حملی از جانب من ندید، ابتدا خواست که دست پیش بگیرد. گاهی آتشی می شد و به گومگو راه میانداخت. اما چون آرامش مرا میدید، از جوش و جلا میافتاد و روی کانا دراز می کشید و به سقف چشم می دوخت و حتی تعجب می کرد. اول گمان می کرد که صادلو هم، یک آقا معلم فرومایه و شرط و شورتش را فرو می گذاشت. لابود پیش خود می گفت اینکه شور شعور ندارد. وقتی خودش این چیزها را نمیفهمد، من برای چه سوء زنش را بیدار کنم. گاهی راحت هم میگذاشت، اما ده دقیقه ای بعد باز می گشت. این صحبت وقتی است که گشتبازی هایش به راستی از حد بیرون رفته بود. ولخرجی که ابداً با امکانات تناسبی نداشت. مثلاً، اصبهای اش را عوض کرد و یک جفت اسب اصیل به شانزده هزار خرید. پیش من آمد و پرسید، بگو ببینم عزیزم اوقاتت از دست من تلخ نیست؟ من با دست او را کنار زدم و گفتم نه بابا فقط حسلم را تنگ می کنی اما این واکنش من به قدری کنجکاویش را برانگیخت که پهلویم نشست میدانی من اینها را گران خریدم اما فرصت خیلی خوبی بود می توانم آنها را به بیست هزار فرانک بفروشم می فهمم می فهمم از پای حالا کالسکت حکایت است به دردت میخورد ولی خب حالا دیگر راحتم بگذار پس حتما اوقاتت تلخ نیست این چه حرفیست خیلی زرنگی میکنی که اینجور چیزها را برای روز مبادا میخری اینها به دردت میخورد من میدانم که تو به هر قیمت شده باید دم و دستگاه و کیابی داشته باشی اینها برای میلیون هایی که میخواهی جمع کنی واجب است. این صد هزار فرانک ما اول کار است یک است در دریا بلانچ که ابدا انتظار نداشت که به جای دعوا و سرزنش چون این استدلالی از طرف من بشنود مثل این بود که از آسمان فرو افتاده است گفت عجب عجب پس اینطور تو عجب آدمی هستی تو آدم باهوشی هستی و میفهمی میدانی پسر جان؟ تو آقا معلمی اما باید پرنس به دنیا آمده باشی پس تو حیفت نمیآید که زیاد پول خرج میکنی نه بابا پول چیست بگذار هرچه چی زودتر تمام شود عجب میدانی خیلی عجیب است تو چقدر توی سر پول میزنی تو بعد از این چه میکنی جدا باور نمیشود کرد بعد میروم هامبورگ و صد هزار فرانک دیگر میبرم بله بله همینطور از عالی است آلیست. من میدانم که حتما میبری و همه پولها را میآوری اینجا برای من تو اینقدر این کار را میکنی که من جدی جدی آشقت میشم حالا چون تو اینقدر خوبی من در تمام این مدت به تو وفادار خواهم ماند و ابدا با هیچ کس دیگر روی هم نمیریزم میدانی؟ تمام این مدت گرچه دوستت نداشتم آخر خیال میکردم تو یک معلمک بیشتر نیستی چیزی در ردیف یک نوکر مگر نه با این همه به تو خیانت نکردم آخر من دختر نجیبی هستم خوب دروغ نگو پس این آلبرت چه بود؟ همون افسرک سیاه سوخته. مگر من دفعی پیش ندیدم اتان وای وای تو خدا مرگم بده خوب چرا نگو حالا چه خیال میکنی؟ خیال میکنی آقا تام تلخ شد؟ جوانیست دیگر باید با همه شور و شرش بگذرد من انتظار نداشتم بیرونش کنی خب او پیش از من با تو بوده و دوستش داری اما پول من را به او نده شنیدی؟ با شور بسیار گفت پس این هم به تو بر نمیخورد تو خیلی فیلسوف منشی یک فیلسوف حقیقی و حالا که اینطور است؟ دوستت خواهم داشت، بله دوستت خواهم داشت و خواهی دید پشیمان نخواهی شد و به راستی نیز از آن روز به بعد مثل این بود که واقعا به من دلبستگی پیدا کرد و طی ده روز آخر اقامتم در پاریس با من به راستی دوستانه رفتار کرد از ستاره هایی که به من وعده داده بود چیزی ندیدم اما از پاره جهاد به راستی به وعده خود وفادار ماند از این گذشته مرا با اورتانس آشنا کرد و این ارتانز زنی بود می گفت در نوع خود بینظیر که در حلقه ما به ترز فیلسوف معروف بود. ولی در این خصوص تفصیل بیش از این نابجاست. با ماجرای ترز می توان داستان دیگری پرداخت با رنگهایی که نمیخواهم به داستان حاضر بدهم. حقیقت این است که میخواستم این ماجرا هرچه زودتر پایان یابد. اما صد هزار فرانک امان همانطور که گفتم یک ماه بیشتر دوام نیاورد و من می گفت که از این سرعت تحلیل رفتن پول صادقانه در حیرت بودم. دست کم هشتاد هزار فرانک از این پول را بلانش برای خود خرج کرد و هزینه زندگی من در این مدت بیش از 20 هزار فرانک نشد و این کم نبود. بلانش که در این اواخر با من رو راست بود دست کم درباره بعضی چیزها دروغ نمی گفت. انصاف میداد که بابت بازپرداخت قرضهایی که ناگزیر از این آن کرده از من انتظاری ندارد می گفت من برای صورت حسابهایم یا سفته هایی که به مردم میدادم از تو امضا نمیخواستم چون ملاحظه را میکردم هر کس دیگری جای من بود مثل من ملاحظه نمیکرد و حتما از تو امضا میگرفت گرفت بعد به زندانت میفرستاد میبینی میبینی چقدر دوستت دارم و چه دختر نجیبی هستم؟ همین ازدواج لعنتی کلی بدهی روی دست من میگذارد آخر ما به راستی ازدواجی در پیش داشتیم این مربوط به اواخر یک ماه بود و تهمانگه صد هزار فرانک خرج آن شد ماجرای ما یعنی یک ماه زندگی مشترکمان من به جا پایان یافت بعد از آن من رسما خود را کنار کشیدم ماجرا به این شهر بود یک هفته از استقرار ما در پاریس نگذشته بود که سر و یه پیدا شد. یک راز به سراغ بلانش آمد و از همان دیدار اول چیزی نمانده بود که در خانه ما ماندنی بشود. البته جای آپارتمانی داشت. بلانش با شادمانی از او استقبال کرد و از خوشحالی جیغ میزد و میخندید و حتی به گردنش آویخت و او را بوسید. البته باید گفت که بلانش بود که او را رارهانه میکرد و از او میخواست که همه جا در بولوار ضمن گردش با کالسکه در تئاتر ضمن ملاقات دوستانش همراهش باشد و باید انصاف داد که ژنرال برای ایفای این نقش هنوز به کار می آمد باتی نسبتاً بلند و هیئتی غلطانداز داشت. گونه ریش ها و سبیلش را رنگ میکرد. زمانی در رسته سوار زرهی خدمت کرده بود و صورتی جذاب گرچه دیگر چروکیده و شل داشت رفتارش شایسته و سنجیده بود و فراک به تنش برازنده در پاریس مدالها و نشانهایش را به لباسش میزد پاریس همراه چنین شخصیتی در بلوار به گردش رفتن نه تنها مجاز بلکه میشود گفت پسندیده بود ژنرال نیکدل توهیمغز عرش را سیر می کرد. وقتی به پاریس رسید و به نزد ما آمد ابدا چنین امیدی نداشت از ترس میلرزید و انتظار داشت که بلانش به دیدن او داد و فریاد کند و به آدمهای خود بگوید که او را از خانه بیرون اندازند. به این سبب چون دید که نانش در روغن افتاده بسیار شادمان شد و آن ما از خوشبختی میخواست ایوانه دیوانه شود و من او را در چنین حالی ترک کردم. تازه آن وقت بود که دانستم که بعد از رفتن ناگهانی ما از روتنبورگ همان روز صبح سکته خفیفی کرده است. قشت کرده و به مدت یک هفته بیهوش بوده و وقتی هم که هوش آمده مثل دیوانها مدتی حرفهای بی و ته است. زیر نظر و معالجه پزشک بوده اما ناگهان همه چیز را رها کرده و به قطار سوار شده و شتابان به پاریس آمده است. البته استقبال بلانش از او مؤثر ترین دارویش بوده. اما آثار بیماری با وجود پذیرایی و نوازش های بلانش همچنان مدتی برجا بوده بود. او دیگر نمی توانست فکر کند یا بحثی اندکی جدی را دنبال کند با هر کلمه می گفت و سرتکان می داد این حرف زدنش بود زیاد می خندید. اما خندش بریده بریده بود و عصبی که از بیماری نشان داشت اغلب ساعتها با قمی سیاه ساکت می ماند و ابروان پرمویش را در هم می کشید بسیاری چیزها را به کلی فراموش کرده بود حواسش پرد بود طوری که خجالت آور بود و عادت کرده بود که با خود حرف بزند فقط بلانش بود که میتوانست او را به زندگی باز آورد هر وقت بخ کرده و قصددار در گوشه می نشست نشان آن بود که مدتی است بلانش را ندیده و دلش برای او تنگ شده است یا بلانش جایی رفته و او را همراه نبرده است یا رفته و او را نوازش نکرده است در این گونه موارد خود نمی گفت که چه می خواهد و نمی دانست که ابو تنگ است وقتی یکی دو ساعت تنها می من خود دو سه بار که بلانش رفته و تا قروب نیامده بود، مثلا سر وقت آلبر رفته بود، او را زیر نظر گرفتم. ناگهان به دوروبر خود نگاه می کرد و بیقرار می شد. مثل این بود که می خواهد چیزی را به خاطر آورد یا کسی را می جست. اما چون کسی را که می جاست نمی دید و حتی به یاد نمی آورد که چه می خواهد باز در بود فرو می ره. تا وقتی که بلانش برگردد، سر دماغ و پر جنب و جوش و رقصان، لباس شیک پوشیده با آن خندههای پر صدای شادمانه به طرف او میدوید، سر به سرش میگذاشت و حتی میبوسیدش. گرچه این فیض را کمتر به او روا میداشت. یک بار ژنرال به قدری از دیدن او خوشحال شد که حتی به گریه افتاد و من تعجب کردم. بلانش همین که ژنرال آمد شروع کرد از او دفاع کردم و زبان آوری می کرد و حتی به یاد می آورد که به خاطر من به او خیانت کرده است. می گفت که تقریبا نامزدش بوده و به او قول ازدواج داده بوده. می گفت که جنرال به خاطر او خانواده را رها کرده بود و من هر چه بود در خدمت او بودم و باید حال او را احساس کنم و باید یک ذره عاطفه نشان دهم و شرم داشته باشم. من چیزی نمی و او پرچانگی میکرد. کرد به خنده میافتادم و ماجرا تمام میشد. یعنی اول خیال کرده بود که بیشعورم و بعد چون کلوهش رو قاضی کرده بود دیده بود که نه پسر خوبی هستم و اخلاق سلیمی دارم خلاصه اینکه اقبت سزاوار آن شدم که این دختر خانم نجیب با من سر لطف آید البته بلانش حقیقتا دختر خوبی بود منطقه خوب در نوع خود و من در آغاز کار نتوانسته بودم منصفانه بر او قضاوت کنم. در آخر کار به من می تو پسر خیلی باهوش و خوبی هستی، فقط حیف که اینقدر ببویی. تو هیچ وقت، هیچ پولی، حتی یک دینار در جیبت نخواهی داشت. یک روس درست حسابی، یک کالموک. چندبار مرا همراه ژنرال فرستاد که او را در خیابان بگردانم، اینگار نوکرش را تا سگش را ببرد هواخوری. من او را به تاعت را رستوران می بردم بلانش برای این گردش ها و پذیرایی از جنرالش به من پول می داد. اما ژنرال خود پول داشت و خیلی دوستش جلوی مردم دست در جیب کند و کیفش را بیرون می آورد که حساب میز را بپردازد یک روز در پال رویال مجبور شدم با او گلاویز شوم تا نگذارم سنجاقی را که نظرش را جلب کرده بود و میخواست هر طور شده به بلانش تقدیم کند به 700 فرانک بخرد یک سنجاق 700 فرانکی به چه کار بلانش میامد؟ تمام دارایی ژنرال هزار فرانک بیشتر نبود من هرگز نتوانستم بفهمم که این پول را از کجا آورده است خیال میکنم مستر اصلی به او داده بود خاص اینکه صورت حساب هتلش نیز او پرداخت اما در خصوص اینکه ژنرال جنرال در این مدت به چه چشم به من نگاه می کرد باید بگویم که گمان نمی کنم از روابط من با بلانش بویی برده بود هرچند چیزهایی در خصوص پول هنگفتی که من در کازینو برده بودم شنیده بود و به ابهام چیزکی به یاد می آورد. اما به احتمال گمان می کرد که من در مقام منشی مخصوص یا حتی نوکر در خانه بلانش به سر اینقدر هست که مثل گذشته با لحن ارباب به زیردست با من حرف میزد و امر و نهی میکرد و حتی گاهی از سرزنش خودداری نمیکرد یک روز سر قهوهی صبحانه بلانش و مرا بسیار خنداند. او آدم زودرنجی نبود اما ناگهان سخت از من رنجید و تا امروز نمیدانم چرا البته خودش هم از علت این رنجیدگیش خبر نداشت خلاصه اینکه شروع کرد به سخنرانی از آسمان و ریسمان بی سر و ته و نامربوط داد میزد که من جوان جاهلی بیش نیستم و او باید به من درس زندگی بدهد و به من خواهد فهماند. و از اینجور حرفها. اما کسی از حرفایش سر در نمی آورد بلانش ریسه میرفت. عاقبت هر طور بود آرامش کردیم و به گردشش بردیم چند بار متوجه شدم که دار است مثل این بود که افسوس چیزی یا کسی را می خورد. و با وجود این که در کنار بلانشه است دلش برای کسی تنگ شده است دو سه بار در این گونه مواقع خود شروع کرد درد دل کردن، اما من هرگز از حرفایش چیزی دستگیرم نشد. از خاطرات دوران خدمتش میگفت یا یاد زنش میافتاد، یا افسوس املاک و پولهایش را میخورد. گاهی از کلمه خوشش میآمد، و و هرچند که آن کلمه نه احساساتش را بیان میکرد، نه از افکارش نشانی داشت، آن را روزی صد بار تکرار می کرد. من سعی می از فرزندانش با او حرف بزنم اما او تن به این گفتگو نمیداد. و مثل گذشته شروع میکرد کرد تن حرف زدن و میگفت: بله بله بچه ها بچه ها حق با شما است و موضوع صحبت را عوض می کرد فقط یک بار احساساتش بیدار شد داشتیم به تئاتر می رفتیم ناگهان گفت بچه های بله آقا جان بله بچه های سیاه روزی هند. و بعد از آن تا شب چند بار به یاد بچه هایش افتاد و تکرار کرد بچه های بدبخت یک بار که صحبت از پولینا کردم حتی به خشم آمد و صدایش را بلند کرد و گفت زن حق است. زن بدنهادی آب روی خانواده من رو ریخت اگر اینجا قانونی وجود می داشت خوب ادبش می اما حاضر نبود حتی اسم دوگریو را بشنود می گفت این نامرد مرا از هستی ساقط کرد اموال مرا غارت کرد مرا نابود کرد دو سال تمام کابوس من بود ماها هر شب به خوابم می آمد. این این نه هرگز اسم او را پیش من نیاورید میدیدم که میان آنها توافقهای شده است اما مثل معمول به روی خود نمیآوردم. اول بلانش بود که را برای من گفت و این درست یک هفته پیش از جدایی ما بود. یک روز ضمن پرچانگی هایش گفت ممکن است باز بخت به او روی آورد مادر بزرگ دیگر جدا بیمار است و این بار دیگر حتما مردنی است. مستر آسلی تلگرامی فرستاده. باید قبول کرد که جنرال هرچه باشد وارسش است. تازه اگر وارسش نباشد هم هیچ جور مزاحم من نیست. اولا حقوق بازنشستگیش را دارد ثانیا اتاق پهلوی را به او هم و کاکا هم می گوید. من هم میشم، خانم ژنرال یک خانم متشخص و پایم در محافل سطح بالا باز می شود بلانش همیشه خیال اینجور محافل را در سر می بخت. بعد میشم یک ملاک روز صاحب یک قصر خواهم شد و رؤایا و یک میلیونم هم جایی نمیره. اگر بخواهد حسودی کند و بخواهد که چه می دانم چه توقعه داشته باشد. می فهمی؟ وای نه نه نه. جرأت نمی کند. من همه چیز را پیشبینی کردم. خاطرت جمع باشد. من وادارش کردم که چند سفته به نام آلبر امضا کند. به محض اینکه که خواست زبان درازی کند مجازات می شود. نه جرأت نمی کند. خب چرا رسمن زنش نمی شوی؟ ازدواج بی تشریفات زیاد صورت گرفت. بسیار ساده و خودمانی. فقط آلبر دعوت شده بود و چند نفر از دوستان نزدیک. اورتانس بود و کلوپات رو دیگران را کنار گذاشتیم. داماد نقش خود را بسیار جدی گرفته بود. بلانش کروات او را به دست خود گره زد و موهایش و روغن مالید و آراست و با فراک و جلیقه سفیدش بسیار برازنده بود. بلانش از اتاق جنرال بیرون آمد و گفت: ولی جدا خیلی آقاوار است. مثل اینکه این معنی به تعجبش انداخته بود. از آنجا که من به این جزئیات توجهی نمیکردم و در همه این ماجرا تماشاگری بهاعتناابیش نبودم بسیاری از آنچه را که گذشت فراموش کردم. فقط یادم هست که معلوم شد که نه اسم بلانش و کمونج بود نه اسم مادرش. اسمش دو پلاسه بود. حالا چرا این مادر و دختر تا آن روز این اسم را بر خود گذاشته بودند چیزی است که من به علت آن پی نبردم اما ژنرال از این معنی خوشحال شد و از اسم میزرق و برق دو پلاسه بیش از نام نجیبانه دو خوشش آمد صبح روز ازدواج لباس پوشیده و آراسته در سالن قدم میزد و با لحنی بسیار جدی و با وقار بسیار پیوسته پیش خود تکرار میکرد مادمسل دو پلاسه بلانش دو پلاسه do place, du cispano blanco و آثار رضایت از خود در سیمایش میدرخشید در کلیسا و شهرداری و در خانه، زمن جام زدن به مناسبت این جشن نه فقط شادمان و راضی بود بلکه به خود میبالید عروس و داماد هر دو عوض شده بودند و وقار خاصی در هر دو پدید آمده بود. بلانش با لحنی بسیار جدی به من گفت: من حالا دیگر باید موازه به رفتار خودم باشم و وضع برخورد خودم را با مردم عوض کنم. هیچ میدانی یک چیز خیلی مزخرفی هست که اصلا فکرش رو هم نمی کردم. فکرش را بکن. من هنوز نتوانستم اسم تازم رو یاد بگیرم. زاگاریانسکی زاگازیانسکی خانم جنرال ساگار ساگار امان از دست این روزها با این اسمهای عجیب و قریب شن. خانم جنرال با اسمی که چهارده حرف بی صدا دارد <تصفيق> خیلی با است نه؟ عاقبت از هم جدا شدیم و بلانش همین بلانش سبک مغز وقت خداحافظی با من حتی چند قطعه هم ریخت حقیق کنان گفت تو پسر خوبی بودی من خیال می کردم خری و ظاهرت هم به همین میمانست. اما این قیافه خوب با تو سازگار است برای بار آخر دست مرا فشارد. ناگهان جیغکی زد و گفت صبر کن. و شتابان به اتاق تواله تشرف و یک دقیقه بعد بازگشت و دو اسکناس هزار فرانکی به من داد. من ابدا چون این چیزی از او انتظار نداشتم. باور نمی کردم که بتواند چون این کاری بکند. گفت این به دردت می خورد. هرقدر هم که معلمه با سوادی باشی ولی خیلی بی و پا و احمقی. بیش از دو هزار فرانک به تو نمی دهم چون به هر حال همه را میباسی ولی خوب خدا به همراهت دوستی ما جایی نمی رفت. اگر باز هم بخت روی خوش به تو نشان داد و باز پولدار شدی بیا پیش من خوش خواهی بود من هنوز پانسد فرانک در جیب داشتم از این گذشته ساعت بسیار خوبی داشتم که هزار فرانکی می و دکمه های سردستم هم برلیان بود با این سرمایه می توانستم مدت درازی دغدغه زندگی کنم. به ام در این شهرک ماندنی شدم تا خوب فکر کنم و مخصوصاً مستر آسلی را ببینم. اطمینان داشتم که گزارش به اینجا خواهد افتاد و 24 ساعت برای کارهای تجارتی خود خواهد ماند. او را که ببینم از همه چیز با خبر خواهم شد. آن وقت یک راست به هامبورگ خواهم رفت. دیگر پایم را به رولتنبورگ نخواهم گذاشت. دست کم تا سال دیگر آنجا نخواهم رفت. میگویند که نباید بخت خود را دوبار پشت سر هم سر یک میز آزمود و در هامبورگ خوب میشود بازی کرد.